اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا اند سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم الرشد به ولن نشرک احدا. که به راه راست هدایت می کند. پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم. و آن له جد ربنا متخدا صاحبه او ولا ولدا و اینکه بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. و كان يقول سفیهنا على الله شططا و اینکه سفیه ما ابلیس درباره خداوند سخنان ناروا می گفت و ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا و اینکه ما گمان میکرديم كه انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمیبندند وأنه كان رجال من النس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه میبردند و آنها سبب افزایش گمراهی و تقیانشان میشدند وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّيَبَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا و این که آنها گمان کردند، همان گونه که شما گمان می کردید که خداوند هرگز کسی را به نبوت مبعوث نمی کند. وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فوجدناها ملئت حرسا شديدا و شهبا و ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم و كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب رصدا و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم. اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می یابد و ان لا ندري اشرون اريد بما في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و اینکه با این اوزا ما نمیدانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند و ان من الصالحون و من لا ذلك طرائق قددا و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالحند و ما گروههای متفاوتی هستیم وأنا ظنننا أنلن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا و اینکه ما یقین داریم هرگز نمیتوانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمیتوانیم از او بگریزیم و انا لما سمعنا الهداء آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا و این که ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هرکس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان میترسد و نه از ظلم و آن من المسلمون و من القاصطون فمن اسلم فاؤلایک تحروا و رشدا و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی زالمند هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است و آن م القاصطون فکانو و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند و واستقاموا على الطريقه لا اسقيناهم ماء ان غدقا و اینکه اگر آنها جن و انس در راه ایمان استقامت ورزند با آب فراوان سیرابشان میکنیم. دینفتينهم فيه وَمَن هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند او را به عذاب شدید و فزایندهای گرفتار میسازد. وان ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانك مساجد اذان خداست پس هیچ کس را با خدا نخوانید و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا كادو يكونون عليه لبدا و انك هنگامی که بنده خدا محمد به عبادت برمیخواست و او را می‌خواند گروهی پیرامون او به شدت اذهام می‌کردند قل ادعو ربی ولا اشرک به احدا. بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمیدهم. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا بگو من مالک زیان و هدايتي برای شما نيستم قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا بگو اگر من نیز برخلاف فرمانش رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمیکند و پناهگاهی جز او نمی‌یابم الا ذلغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين خالدين فيها ابدا تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش دوزخ از آن اوست و جافدان در آن میماند حتی اذا رأو ما من اضعف ناصرا و, اقل و عددا این کار شکنی کفار همچنان ادامه یابد. تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند آنگاه میدانند چه کسی یاورش ضعیفتر و جمعیتش كمتر است قل ان ادری قریب بگو من نمیدانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا. دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد. اِلَّا مَنْ ارْتَضَى من رسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يديه فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار میدهد لیعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم و كل شيء عددا. تا بداند پیام برانش رسالت پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است